هیک به صورت گروهی یا باندی از باعث گرفته تا پیر پاکستانی کمک کردن جایز است کمک کردن خیلی معمولی یعنی اند در 50 تومان بیشتر نده این که داره این باندبازی رو میکوره این گدایی جایز نیست اینا داره کل اون حقدار زکاتو محروم میکنن داره مردم رو نسبت کل گداها بدگمان میکنن این قلد میچسوان این قلد میچسوان که آبروی صالمی اگر نده میگن نداد اگر هم بده آد خراب میشه. این رو دادن اگر می دونستیم دارن گروهی کار می کنن بینها ندید. و جلوی چند افرادی گرفته میشه تاکه مستحق زکات یا مستحق پول به بی حقش برسه. این هارو دو افرادی با ویزا وارد می کنند و اینجا باعث جدایی می کنند. این وظیفه این وظیفه مسئول مسئولین هست. باید مسئولین جلو و مسئولین جلوی این رو بگیرن و بینها ویزا ندهن. جن که این هارو دارن کل مردم را تن کردن و آسی کردن.